بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآلِه وصحبه أجمعين أما بعد سيبدو مين درس درس يا سفيري يوسف عليه الصلاة والسلام قي أشتاد وشيش فارمدي الله جل شأنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعقوب عليه السلام قام في گلایه هم از کسی نداره اینجا هرچند چند داشته از فرزندانش ولی با این وجود منامتشو نمیکنه سرزنششونو نمیزنه حرفی نمیزنه میگه حرفم من با خدا من رو از الله میبرم منظور این که اینجا این نیست که شکایت از الله میکنم شکایت از الله نداره فکر نکنید اینجا شاکیه این غمم را با الله در میون میذارم این وسی که برام پیش اومده این دلتنگی که برام پیش اومده این عبودیتی هست که ما در طول این داستان میبینیم بین دو دوتا پیامبر یعقوب و یوسف علیه السلام چه در مصیبت چه در فتنه و امتحان چون معاذ الله گفتنشون چه اون الله المستعان گفتنشون و چه اینجا حرف یعقوب علیه السلام انما اشکو بثی این حرفی که از غم دارم میزنم این اظهار دردی که دارم میکشم از اون غم و اندوه بثی و حزنی این اندوه هم چون اندوه در اصل غمی که انسان در دلش داره کسی نمیدونه. و این بحثی که یاد شده قبل از اندوه این گفتن این حقضیه که من الان دلتنگم دارم ابراز میکنم این فقط با الله در میون میذارم یعنی بین من و الله و از الله میخوام که این مشکل و این غم و اندوه را خودش حل بکنه. یعنی گشایش این غم را از الله میتلبم رجوعم به الله از الله میخواهم که فریاد رسم بشه این عبودیت ای بندگی هست که الله بهمون در این سوره داره یاد میده خصوصا این دو تا پیانبری که الگون یوسف و یعقوب علیهم السلام که الگون در این سوره که الله میخواد از باب عبرت به ما بگه که چطور از اینها الگو گیری بکنیم یاد به میده الله اینجا اینیکه دیگران محل اندوه ما نیستن اون بیاد، این, بیاد این بیاد این بگه من دلتنگم اون بگه من دلتنگم قاعده کلی اثر در زندگی همه دلتنگن همه دلتنگی دارند تو خودت را در اون دلتنگی تنها نبین این قاعده کلی هست بر همه بشر صدق میکنه این دلتنگی هر کسی یک نوع دلتنگی داره کسی نیست که دلتنگی نداشته باشه چنانچه الله میگه لقد خلقنا الانسان في كبد صارت دلتنگی دلتنگی سختی خلقت کردیم آفریدیم فکر نکنید خودتون فقط هستید که غم میکشید و غمدار و غمگینید همه به نحوی همه به نحوی امتحام میشن با انواع دلتنگی چه پیغمبرش چه غیر پیغمبرش اینجا الله درس یعقوب را مثال میزنه با اون دلتنگی ها که داشت بچه های خودش اومدن بچهش رو ازش گرفتن و بعد بچه دوم رو گرفتن دلتنگیه الله میخواد بگه اگر نه کنید فرقی نمیکنه برای من در امتحان گرفتن اینکه این امتحانه پیامبر باشه پس بده یا یک بشری دیگه علی یا زید یا محمد یا احمد همه یکین همه باید امتحان بشن این نیست که بنده ای الله معاف از امتحان بکنه نه بنده ای باید امتحان بشی قانون الهی جن و انس خلقت کرده به خاطر همین امتحان بشن در عبودیت و بندگی شما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا برای عبادت آفریده شدی برای فرمانبرداری از شریعت و دین آفریده شدی الله میخواد تو هم امتحان بکنه دین بودیتت بر سر اخلاصه یا بر سر تقلید و بر سر عادت از دل الله رو میخوای دوست داری بحث دوستی یا الله بحث اینکه تو چطور ثابت بکنی که الله رو دوست داری با ادعا که نیست کلون یدعی اصلا به لیل همه ادعا میکنن فلانی رو دوست داره اون فلانی کی رو دوست داره مهمه و کسی هم که شما رو دوست می‌داره نگاه عملت میکنه. ان الله لا یَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَجْسَادِكُمْ نگاه جسم و صورتتون که نمی‌کنه کدوم یک پشتیب‌تره کدوم یک زیشتره کدوم یکی مثلا قد و قوارش بزرگ‌تره و تنومند‌تره و لاغرتره نه صحابی میگه فکر نکنید که این لاغر نگاه ساق پاش نکنید والله این میگه که سنگینی که این ساق پا داره چیزی نداره در ترازو سنگینی انسان به عملشه به طاعتشه به عبادتشه به اخلاصشه به ابراز دوستیشه با الله چقدر تورسه این شخص خودش را به الله نزدیک کنه لا یزل عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه و عبودیات و بندگی و نوافل و حسنات و نیکی همجوری میگه الله بنده به من نزدیک میشه تا اینکه او رو دوست داشته باشه بس این دوستی رو باید کسب کرد باید رفت به طرفش فلانی دلش خوشه فلانی کیف باونه فلانی بیغمه چرا فلانی بیغمه نگاه کن چرا خوش بااله چرا خوشه شما نگاه بکنید بله شکرگزار زبان شکری داره علت چیه چرا تو نداری این چطور به این درجه رسیده که زبانش شاکره و چرا تو شاکر نیستی آیا اللهی که آفریدگاره که میگه ف احسن سوهارکن و لقد خلقللا انسان فی احسن تقویم در بهترین صورت در بهترین تن در بهترین قالب شما رو آفریدیم با اون ویژیک هایی که به انسان داده الله به مخلوق دیگر نداده آیا الله تبعیض بین خلقش قال شده اینین خدای اون کسی دیگه از خدای تو کسی دیگه است الله مال همه است هر چقدر تو به الله بیشتر نزدیک شدی الله به تو بیشتر میده دل تو آرام می‌کنه، میکنه دل تو شادتر می‌کنه. هر چقدر زبانش شاکرتر باشه الله نگاه عملت میکنه پس اگر دیگری رو میبینی خوشه نگاه عملش کو چرا خوشه از مال حرام میخوره نگاه به ناموس مردم داره والله اون کسی که نگاه ناموس مردم داره یا حرام میخوره والله شاد نیست والله پر از دلتنگی شب میاد فقط میخواد مس بکنه که ندونه که چی گذشته از دلتنگی ها براش والله افسورده است دلتنگی و غمگینه کی گفته که مشروب خوشی میاره کی گفته پول خوشی میاره کی گفته حرام خوری خوشی میاره کی گفته ایشونوشی و نمیدونم هوس بازی خوشی داره کی گفته والله خوشی در ایران نیست خوشی آباده‌ی قلب بینه که تو با یاد الله آبادش بکنی. الله با تو باشه. دیگه چی میخوای؟ این مهمه که به این غنای نفس برسی. خاطر همینه. رسول الله صلی الله علیه و سلام اگر کسی بینیاز شد از مردم، الله بینیازی را جلوش میذاره او را بی‌نیاز از مردم میکنه ولی اون کسی که خودش محتاج دیگران میبینه جعل الله الفقر بین الله فقر را جلوش میذاره میلیارد پول داره، پول حسابش هست، ملک، زمین، همه چیز داره، ولی خودش فقیر می‌بینه. چرا؟ علت چیه؟ چون تمادر اون داره، چون این دستش بین اون درازه. این مق... مقام رو باید کسب کرد این مقام دادنی نیست همینطوری به کسی بدن افتخاری افتخاری نیست زحمت میخواد تلاش میخواد تو منحرف شدی همون تو که من درس ی گذشته گفتم این جلسه هم خواهم گفت همونه فرق نمی‌کنه قاعده همونه فلا مازاغ و عزاغ الله قلوبهم زیق از خودته بدی از خودت انحراف از خودته سختی اگر به طرف تو داره میاد به خاطر کسب خودته الله نخواسته که تو سختی ببینی الله تو را امتحان میکنه که تو به خوبی برسی هدف این نیست تو دلتنگ بشید تو غمگین و افسرده و اندوگی بشید نه الان قصه یوسف دلتنگی هست یعقوب دلتنگی داره آیا الله میخواد یعقوب دلتنگ بشه آیا الله به فکر یعقوب نیست؟ پیان برشه میگه میشه الله به فکرش نباشه میگه میشه الله دعاشو سجابت نکنه نمیشه به خاطر همین یعقوب حسن ظن به الله داره طلب صبر میکنه هی hey, طلب صبر اونجا گفت صبر و جمین اینجا گفت صبر و هی hey, طلب صبر میکنه از الله چون میدونه حسن ظن به این حسن ظن گمان به الله جلو به چشم یعقوب هست سچنال وقعاهد بود الله داره به درس میده همیشه گمانت با الله نیک باشه حسن ظن به الله داشته باشه. والله اننده حس نظن نبدیبه همیشه بدون الله با گمانی که تو به با اشداری باید برخورد میکنه. گمانت اینی که این امتحانه میخاطر امتحان بکنه که تو چگره شکر گزار میشی و الله همونطور با امتحان میکنه حتما خیریت هم توش بوده و الله قه سرع کف که ما میخونیم هرجمه برای چی؟ مثلا چرابرابان یادآوری کرده قه خزر و موسا عليهلی السلام چرا؟ بچه رو میکشه که علیه السلام موسی علیه السلام اعتراض داره که چرا این کار رو کردی؟ گه تو نمیدونی من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی الله مطلعش ساخته از غیب که بله اینجا این بچه چنانچه بعد خیضر علیه السلام میگه بهش به موسی علیه السلام میگیم بچه اگر بزرگ میشد الله میدونست از علم غیب که پدر و مادرشو گمراه میکنه برای نجات پدر و مادر از عذاب ابدی جهنمی الله به من دست داد که این بچه را جلوی روشو برداره که اونها رو در فتنه‌ای اندازه پس الله حکمت داشت ما نمیدونیم یعقوب علیه السلام جو حسزن داره و به حکمت الهی ایمان داره الله حتما حکمت داره در این کارش در این مصیبتش که او را داره امتحان میکنه هر مصیبتی در دنیا هر فردی دو چار میشه الله حکمت داره در اون مصیبت براش و از تو میخواد که دنبال چاره باشی بیندیشی برای خودت و تو نیازمندی خودت را به الله ثابت بکنی الله نمیخواد که کمرت را خورد کنه میخواد کمرت برای خودش خم کنه برای که تو از تو بندهی بسازه که راکع و ساجد باشی که نیازمندیت را به درگاهش ثابت بکنی بار الله محتاجت هم. سر رو رو و الله کنی نسر غرور و کبر و ابلیس باشی عبا و سکبرا و كان من کافری هیچ وقت از مصیبت تو این نبید که الله میخواد تو رو شکست بده و تو رو خرد کنه و سرت رو زیر آب کنه و با مشکلات تو رو گریبانگیر بکنه که در اندوه و خم باشی الله هیچ وقت نمیخواد که آزاری و ظلمی بده و ما که بغله لل العید الله به هیچ کسی ظلم نمیکنه. ما که بعد میبینیم الله را بد میبینیم الله به هیچ کسی بدین نمی‌کنه. بود گمانمون به الله نیک باشه. بود خیریت خودمون در انتخاب الهی بودین. این که پدر مادرمون، بچمون، هر کسی هر نوی امتحان شد باید حکمت الهی رو در او ببینید. الله حکمتی داشته درین. الله از من امتحان گیره با این. مهم اینی که من نمره‌م چن میشه توی این امتحانه. مردود می‌شی یک بار، مردود می‌شی دو بار، مردود می‌شی سه بار. الله تو را امتحان میکنه که تو چقدر الله رو دوست داری و بهش بر الله منتظر که کبر بهش بگردی که اصلاح بکنی خودت مراجعه بکنی رجوع بکنی بهش مثلا میذنه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما چقدر الله خوشحال میشه وقتی که بنده پی میبره به اشتباهش وقتی که پی میبره به گناهش و بعد میاد در الله را میزنه بار الله و مدام سوی تو سر زلت و سر نیازمندی را به تو خم میکنم بار الله محتاجم محتاج درگاهتم تو بینیازی تو کاملی و من ناقصم تو میشنوی تو قوی هستی و من ضعیف بودیت بندگیه الله منتظر این عزت که تو بگی من بند تو خالق منی، آفریدگار منی، پروردگار منی امور من به دست توست، روزی من به دست توست خوبی و بدی به دست توست بدی ها را از سر من بر میداری، خوبی ها را درش برام باز میکنی الله متظر اینه ازت متظر اینه که تو اقرار بکنی به ضعفت اقرار بکنی به اشتباهت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثال چی رو زدن؟ من همیشه هم تکرار میکنم، والله حدیث عجیبیه برای اینکه درک ما باز ب برای اینکه که جلو و چشمون بذاریم که چقدر الله بندش رو دوست داره و چه میخواهد از اون مصیبت ها و امتحان که بنده رو با اون دوچار میکنه ص سات میمایند والله ال الله اشد دو فرحناک و شدت خوشحالی الله به نسبت رجور و برگشت و بازگشت بنده به الله در موصیبت ها در فدنه ها در امتحان ها که والله قابل قیاس نیست خصاسات رو میبرماند خوشحالی الله می به اون بنده کتابه میکنه بهنسبت اون شخصی که با شطورش آزکر رو گذاشته رویش، رفته زیر درختی صراحت میکنه شطور رو یک جا میبنده بیدار میشه شطور نیست آزووق نیست میره میگرده اینور اونقدر نیست یک دفعه شطورش رو می بینه. یک دفعه شطور از شدت خوشحالی دست گم میکنه از شدت خوشحالی میگه اللهم انت عبدي وانا رب بار الله تو بنده من و من خدات از شدت خوش خطا من الفرح. شدت الفرح شدت خوشحالی اشتباه میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما والله خوشحالی الله مثل خوشحالی این نیست خوشحالی الله با این قابل قیاس نیست چقدر الله رحیمه به بندش چی میخواد از بندش چیزی جز بندگی ازش خواسته چیزی جز اقرار به زعفت خواسته که تو بگی من بار الله من من محتاجته من نیازمندتم چیزی جزینی این ازت که بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین فقد رو دارم فقط از تو می‌خوام یاد بگیر از قصه یعقوب قصه یعقوب اینو به من شما داره یاد میده بندگی عبودیت پرستش رجوع به الله اقرار به ضعف قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون اینجا يه قسمتش بحث بشريه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بيش يهدا ودي بيگه قل إنما أنا بشر مثلكم يه قسمت غم عنده بشريه و يه قسمت نبوهته يوحى إليه هنجا ببيانبرش ميگه اينجا هم يعقوب ميگه بأونها و من یه چیزی میدونم از الله شما نمیدونید او اعلم من الله ما لا یعنی من الله باش رابطه دارم الله هست که بر من وحی میکنه از علمی به من آگاهی داده که شما ازش آگاهی ندارید من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید مقام من با مقام شما فرق جایگاه من با جایگاه شما فرقه در اون ارتباط بین اون پیغمبر الهی و الله یک تا که از بالا برش وحی میکنه اعلم من الله مالت علمون شما نمیدونید یه چیزی من میدونم چی میدونه؟ چی چیز الله بهش گفته؟ خواب یوسف از ابتدا شروع شد اومد فهمید یک جریانی باید پیش بیاد یوسف باید به این مقامه برسه که یازده ستاره یازده تا فرزن بهش سجده بکنن فهمید که این خواب این وحی الهی, الهی همینطوری نیست. این یک مجدگانی هست که برای رسیدن به این هدف به این مقصد در پی اون خیلی صحنه ها باید صفحه ها باید عوض بشه رسیدن به یک مقام بالا با آسونی نیست این عقوب علیه السلام میدونه در مقام بشریش دلتنگ بچه شد بچه کجا رفت چی شد بر سر بچه مقام بشریش مقام نبوت و پیغمبریش جایگاه بالاست و خواهد رسید ولی کجاست و کجا نیست نمیدونم؟ نمیدونه به قاطر همین آیه بعدی چی میگه یا بنی یا اذهبو من یوسف امید و تمع خست و زن هنوز با الله داره هنوز اون بشارته که یوسف بهش گفته هنوز تو ذهنش است علیه السلام یوسف باید یک مرحله بالا برسه دلتنگ شه خودتون امتحان بکنید یک روز بچه‌تون یک روز که نه چند ساعت بچه‌تون نیست میره شب دیر وقت میاد چقدر دلتنگ میشید این سالیان سالی یعقوب علیه السلام که دست و پنجه نرم می‌کنه با دلتنگی می میدونه یوسف زنده است میدونه که او را از عمد ازش دور کردن چیکار باش کردن الله میدونه نمیدونه علم غیب که نداره که خودشو آرام بکنه بشره اون علم غیبی هم که مددش می‌کنه یاریش می‌کنه محدوده یک جنبه is شریعت الهی از اون چیزی که مش نیاز داره بهش میگه ولی بقیه رازش پنهان نگه داشته تمامی این پیامبر از همه خزینه های غیب نمیدونن بندگان نبایدم بدونن اگر بندگان بدونن زحمت نمیکشن من اگر بدونم آدم صالحی و خوب از دنیا میرم دیگه نماز نمیخونم میگم من که الله حس خاتمه برام نوشته حتما توبه آخر عمرم یا بهم میده من بهشتی بشم اونم که جهنمی میگه خب الله نوشته که من جهنمی ام بس چرا نماز میخونم ولكم بابا نماز نمیخونم من که جهنمی شدم الله منو جهنمی خلقت کرده مشرکین همین طور میگفتن دیگه میگفتن ما مجبوریم هم تو خدا ما رو جهنمی خلقت کرده لوشه الله ما اشراکنم خدا هم میخواست ما مشرکم نمیشدیم الله تکزیبشو میکنه و دروغ میگید شما الله شما رو مجبور نکرده بلکه بهتون اختیار داده دست خودتونه که مؤمن بشید یا مشرک بشید پس هنوز غیر از اون حسن به الهی امید و تمام هست به اینی که درهای خیر و رحمت الهی باز بشه بر بر یکوب علی حسلام سختی ها داره میگگذارره سنی ازش گذشته پیر شده هنوز یوسوف را فراموش نکرده یا بنیگه هافت حس و من یوسوف و اخی یوسوف و برادرش دوتا اون یکی خودش برنگشت گفتم اون یکی و برنگشته اینجا دیگه اسم از اون برادره که گفت من میمونم دیگه یاد نمیکن ازش اسم میدونونهفر یاد می کنه چون این دو نفرن که یکیشون به اسارت گرفته شده یکیشون هم که دیگه تو چه انداخته بودم معلوم نیست که کجاست یوسف و اخی یوسف و بنیامید وا بعد تی اسو من روح الله معیوس نشید از رحمت الهی نا کنید اون بحث حسن زنه و الله معیوس نشدن از رحمت الهی معیوس نشدن از گشایش الهی از مغفرت الهی چون کسی که پر از گناهه اون شخصی که 99 فرا کشته بود بعد صد و میرم اومد اونها عابده که گفت که راهی برای توبه نداری کشت بعد یک عالمه اومد نجاتش داد گفت که نه راهی برای توبه هست انسان هر چقدر خطا بکنه الله تواب رو داریم یعنی هر چقدر گناه داشته باشی الله برات میبخشه هیچ وقت نباید انسان ناوید بشه از رحمت الهی این درس رو داره میده به بچه هاش شما هم اگر گناه کردید توبه بکنید معیوس نشید توبه کردید الله کمکتون میکنه یاریتون میکنه در این مصیبتی که من به اشتباه چهار شدم و شما هم به اشتباه چهار شدید اینام خطاکار کار بودن داره درس میده بچه هاش ای فرزندان هر چه قدم خطا کار باشید بدونید که الله گناهان بندگانم میبخشه فلا اسو من روح الله از رحمت الهی نامید نشید از مجدگانی الله نامید نشید از درهای خیرش آشنا هر چی بخوام در کلمه روح بذاریم کمه روح الهی یک نعمت فزون بزرگ الهی یک گشایش الهیه چنانچه حتی ها هم در تعبیر از کلمه روح عاجز موندن که چگونه تعبیر بکنن ازش بخاطر همین کلمه رحمت رو به جاش میارن از رحمت الهی میگن بالاتر از رحمت مجرد یک رحمت, رحمت نیست لطف و رئوفیته الهیه و عنایتش و اهمیتش نسبت به بنده انه لا یئس من روح الله کسی نامید نمیشه از رحمت الهی از حکمت الهی همینا گفتم در بعد میگه از لطف الهی کسی نا امید نمیشه از روزی الهی همه اینها گفتن همه اینها رو در بر میگیره کسی نا امید نمیشه الا القوم الكافرون مگر اون کسی که کفران نعمت داره مگر اون کسی که کافره این کافر همه رو در بر میگیره الا القوم الكافرون کسی که کفران و نعمت داره خود به خود در اون کفر اعتقادی به زمان میفته کسی که کفر نعمت بکنه خوبی الله را به چش نداشته باشه اهل طاعت و عبادت نمیشه اهل نماز نمیشه چون خوبی رو نمیبینه همیشه خودش خودشو بدبخت میبینه کسی که خودشو بدبخت میبینه دست به هر کاری میزنه دختر تنفروشی میکنه گلاهایشه من پدرم معتادم مادرم نمیدونم بمونه هم نمیده انگار که تو دنیا فقط خودش مصیبت زده از غم دیده است تو دنیا هیچ کسی دیگه مثل این نیست. الله داره بهت میگه فکر نکن که تنها غم دیده ای دنیایی. همه غمی دارن. هر کسی هم غمش در یه چیزیه. الله به کسی ظلم نمی کنه. وما ربک بظلم من للعبید. فدرت در گور خودش میخوابه. نون نداری مگه تو خونه مگه آب نداری؟ نون برات پیدا نمیشه. نمیتونی جای نونی پیدا بکنی؟ نمیتونی دست به دعا برداری از الله بخوای که شوهر خوبی نصیبت بکنه ای دختر، ای خواهر؟ ماندگیشو با انسان انسان حفظ بکنه. که تو رو بیاری بی این و اون این لاتخفت تو داری سر رو پیش بندگان الله که گرق صفتا بیشترشون داری خم می‌کنی یوسف یازده تا برادر داره ده تاشون گرق صفتا بودن اونجا قبل از توبهشون به پیامبر الی رحم نکنه دو تا پیامبر یعقوب و یوسف بندگان اینطوریان بیشتر بندگان تو دنیا یه. چرا اعتماد انسان بکنه به این و اون این خلالی که تو جامعه ما می‌بینیم چه از اون پسرش چه از اون دخترش ول دخترها بیشتر چون آزادی تو خونه و منزل نمی‌بینن از خانوادهش مادهش موبایل بهترین فلانی فلان داره منم این فلانی اون لباس و اون ماشین داره ما هم این چونه به این خواستش نمیرسه میخواد یک کسی بیاد این خواسته رو تأمین بکنه دنبال یک پسر لارجی به قول خودش میگرده هی امتحان میکنه از این پسر این پسر آخرش هم مادرش میاد بخت دخترم بسته است قفلی که خود دخترت بر بختش انداخته فلما ازاغ الله و قلوب قفلی که خود دختره بر بختش انداخته اگر میخواست که این بخت باز بشه باز می‌شد. نهایتش مینالی از سحری جادوی درد و درمانش هزاران بارم گفتم هفت بار الحم و ستا قل والله چیز دیگه نمیخواد یعنی چه بختش بسته است از کجا آوردی بختش بسته است الله اومده قف کذاشته رو بختش که این قفله باز نشه نه تلس شده فلان شده این ملا بگرد اون ملا بگرد چهار تا ملای جادگر کلا بردارم پیدا میکنن و این،, این قطع پول به حساب بزن این قطع نمیدونم فلان بکن در امین عدم احساس بندگی به اللهه شخص این بندگی را نسبت علاقه ای که باید به الله داشته باشه یار و یاور خودش میبینه نداره نه اون دوستیشو میاد ثابت بکنه و نه هم الله یار خودش میبینه معین خودش میبینه یعنی چه الله المستعن داره یعقوب هی تکرار میکنه یعنی الله معین منه یاک انا عبد و یاک انا استعین اگر الله یارته پس چرا از دیگران تمه دارید فکر میکنی دیگران دردتو پانسمان کنن به دردت بخورن مرحم دردت باشن والله هیچ کس نمیتونه مرهم دردت باشه جز الله که اون کسی که بخواهد مسخر میکنه برای پانسمان دردت از الله بخواد که اون جلو و روت بیاره اون کسی که مناسبته نباید انسان بیا مظلم نمایی بکنه و بخواد با آجز نالی در فحشا و منکر رو برای خودش باز بکنه در فحشا و منکر از اینجا باز میشه دیگه میگن فقر و فحشا فقر لازم نیست پول باشه طرف پول داره ولی فقر محبت ازش میاره زنه خیانت میکنه به شوهرش بهانه شیه شوهر محبت نمیکنه به غلط کردی تو که تو بخوای مرتکب حرام بشی بعد بهانه‌ت باشه که آقا شوهرم کوتاه شوهر کوتاه تو گور خودش میخوابه شوهرندا چی چیکار میکردی آسیه رضی الله عنها و علیها الصلاه والسلام لا يتعلم أن أخذنا من خلالنا فأخذنا من الله جل شأنه رب ابن مي عندك بيتا في الجنة بره الله منزل پيش خدت كنور خدت تربحش تعلات بخام يعني كي؟ كمان محبت نمي بينام اس شوها میگه قرار همه فرشته بشن الله فرشتگان گذاشته برای زمین که فقط بیام به تو محبت بکنن خودت خوبی کن تا خوبی ببینی همش توقع از این شوهر باید توقع داشته باشی پدر باید توقع داشته باشی مادر باید توقع از همگی از توقع داره جز الله که باید از توقع داشته باشه نداره نیازمنده همه هست جز الله یعنی چی چرا هر نماز میگی یاکنسعین یاکنسعین یاکنسعین معینه مردم میبینی نه الله درخواست تو طلبت از مردم داری نه از الله این مقام ذلت به بنده که که تعس عبد الدره و دینار این بنده در هم و, و دنیاست چی میخواد شوهر باشه چی میخواد پدر و مادر باشه توقع تو سبب شده که تو برده شوهرت بشی شوهرتو داری میپرسی اشتباه داری میکنی خواهر شوهرم بنده ای است مثل تو بعد رجوعت به با الله باشه اش تمعت از الله باشه توقعت از الله باشه که بیاد گشایشی بده امید و تمع به الله داشته باشی او جلوت خیر و خوبی بذاره او درهای خیر و خوبی بر زندگی باز بکنه الله یکتا رزاق بالقوه المتین اللطیف الرحیم الودود الرحمن پس اون باید بخواهی این الله از من و شما میخواد پس بدترین این درد کفران نعمت. که انسان خوبی رو به چش نمیره، مدام کور میشه. و خصن این خصلت در زنا که من الان دارم تکرار میکنم، در زنا بیشتر از مردها هست. هر چه که مردها الانم زن صفت شدن فرقی با زنها نمنداره. رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمان لو احسنت الى احدهن دهرا عمری خوبی بکنی، یک بدی از دید تقول ما رایت که خیرا قط، یک ذره خوبی هم از دیدم. این چیه؟ خصلت زنانه. خوبی بهشون بکنی یک بدی از دیدن خلاص چشپوشی میکنن. این با درمان بشه. کفران نعمت سبب میشه که انسان از بهشت دریای محروم بشید چنانچه بارها گفتن که الله صلی الله علیه و سلام می‌فرماید رأیت كنا اكثر اهل النار بشترين اهل الجنه و شما زنا دیدن قال لمن يا رسول الله لان كنا تكفرنا العش كفران نعمت کفران نعمت شهادت یتلف کفران نعمت الهی بدتر از اون سبب میشن رو این و اون میاره شما با نعمت و به چش داشته باشه و این بلا و که در این سوره می‌بینیم به خاطر اون کفران نعمت خوبی های خودشونو فراموش کرده بودن یک خوبی که الله داده بود به یوسف اونو نسبت بهش حسادت میورزیدن که بله پدرمون توجه بیشتری داره به یوسف اسمون باید اینو درمان بکنه یک حسادت اینجا حسادت درست اون نعمت داده مال خودشونو نادیده گرفته مال یوسف رو گرفته بودن انسان باید همیشه اون نعمتی که الله به خودش داده در نظر بگیره کاری نداره الله به دیگران چی داده چی نداده تو اجازه نداری قضاوت درباره دیگران بکنی که چرا داده الله چرا نداده الله لا یسأل عما يفعل تو نمیتونی الله رو زیر سوال ببری اگر بخوای چشمت به دیگری باشه که چرا داره نداره تو الله رو بردی در حکمتش و در خلقش و وفرینشش همیشه باید با حسن زنده داشته باشی حسنه با الله داشته باشی الله رو حکیم ببینی در اون مقدراتش به نگاه به خوبی هاست حتی در زندگی که سبب میشه انسان بدی رو فراموش بکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفر این المراه خلقت من ضلع نعوج زنا و سخونه کجغلقد شده یعنی یک عیب تو زن هست نمیشه اصلاح کرد حالا بعضی گفته این نعوج ما فی الضلع الا کجترینش بالاست علما میگن منظور زبانه حالا هر عیبی میخواد زبانش باشه میخواد هر چیزی باشه از اون زن اون عیبی که ما نمیپسندیم چی میفرماین رسول الله صلی الله علیه و با این عيب. عیبی در زنت همسرته چیکار باید بکنی؟ می فرماین؟ صلی الله علیه وسلم اگر می زندگی خوبی خوشی داشته باشی نگاه خوبی های همسرت کن نگاه چی؟ خوبی های همسرت کن و چشمت رو از اون بدی ببن انگار که تو بدی ندیدی دست خود دیگه خود رو با سازگاری بری سازگار کنی با اون نقص با اون خلقت آفرینشی که اینطوری این زن خلقت شده بله یک سری رفتار آداب رسوم یا کوتاهی در عبادت اطاعت در امور منزله سعی میکنی تلاش میکنی با بلته احسن با خوبی بهش توصیه کنی بله. بفهمونش اصلاحش بکنی ولی بله، یک سری چیزا هست دست دیگه جبله است قرار بر این نیست که اون زنت همسرت فرشته ای و روی زمین باشه این توقعات بی جای ماست بعضی ها میان گلایه می کنن می زنم اینطوری کار زنم اینطوری که زنم اینطوری که زنم اینطوری کرد ببین هم این رسید همینطوره زنم می بفهمم در از در ببین من اینم عمد دعوا داره با خانمش میشه من اونم عمد دعوا داره با خانمش میشه من اینم عمد دعوا داره با خانمش پیش من من به نزارت خواب خوشی خواهم داشت ساعت 2 در خونه می تلفن زنگ داره چه فلان چه کار کنم زنم رفت از خونه بیرون خونه پدرش نمیدم. پوش بهم داده من چیکار کنم عزیز مقتدر میگه نیستم که کنف یکم عفریت نیستم که بلندش کنم از خونه پدرش خونه تو که توقعات بیجاست اون موقع که داغ بر دست ما و دل ما میشینه اون وقت هستیم که حالا میدونیم که شیخ شاید مشکل ما حل بکنه این همه شیخ راول کرده بودی تو درسی شرکت نکردی صحبتی نشنیدی دنبال دین و زندگیت نبودی الان که تو چه افتادی میخوای تو را از چاه در بیاره خدایش عقل خرد این میگه فهمیم میگه کل زندگیتو در چاه گذروندی الان که تو قهر چاه در چهار رود بسته شده الان داد میزنی شیخ بیاد در چهار رو باز کن یک بار خودت نمی مدی که آقا بگی آقا حدیثی چیه آیه قرآنی چیه این همه الله درس عبرت گذاشته در سوره یوسف کسی که دنبال نیست کسی را ارزش نکنه جز خودش خودش کوتاهی کرده فعلا مزاقو عذاب الله قلوبهم زیغ از خودت کوتاهی از خودت نرفتی یاد بگیری زن اگر به اینجوری مقصر خودت بودی نه تو یادش دادی نه تو کمکش کردی نه تو هم دنبال خودت بودی که خودت هم اصلاح بکنی تابونشو خود بس نه اینکه دیگران به پاد بسوزن ما نیازمندشیم در زندگی به مراجعه خودمون و تجدید نظر در بعضی از رفتارهامون هامون نسبت به دینمون به دینمون با دید خوشنگاه بکنیم این قرآن دستور الهیه نجادگر من و شماست الله گذاشته برای نجات من و شما و این نجات رو باید به سویش بشه تابی و سارعو مسارعت میخواد، تلاش میخواد، زحمت میخواد، کوشش میخواد و سارعو باید بدوی به طرفش این دویدن با وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و زندگی گذاشتن در اختیارشه نه اینکه که تو و بی خیال من به همین قطع اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و علی محمد